هفتاهم دائما به تفکر از صفر بپردازید این یکی از بهترین ابزاریه که برای شفاف کردن افکارتون و بهتر کردن کیفیت زندگیتون یاد میگیرید مرتب از خودتون بپرسید آیا چیزی در زندگی من هست که اگه قرار بود اون را از اول شروع کنم با دانستن چیزهایی که الان میدونم دوباره اون کار رو نمیکردم کدوم یکی از کارهایی که امروز مشغولش هستید، رابطه‌هایی که امروز دارید یا سرمایه‌گذاری‌هایی که کردید رو اگه می‌خواستید تازه اون رو شروع کنید با دونستن چیزایی که امروز می‌دونید این کارها رو نمی‌کردید؟ این یکی از مهمترین سوالایی که می‌پرسید و جواب میدید. وقتی به وقت وقت‌اندوزها و وقت وقت‌تلفکن‌ها فکر می‌کنید، معمولاً مزاحمت‌های غیرمنتظره یا تماس‌های تلفنی به فکرتون میرسه. اما بزرگترین وقت تلف شما اینه که به پیگیری یک کار، شغل، حرفه یا رابطه ادامه بدید که براتون نامناسبه. خیلی افراد با انجام کاری که واقعا دوست ندارن یا از اون لذت نمیبرن سالهای زیادی از زندگیشون رو تلف میکنند بعد در سی و چند سالگی مجبور میشن در یک شغل کاملا جدید و در یک حرفه کاملا جدید دوباره از اول شروع کنند آیا هیچ چیزی هست که در حال حاضر انجام میدید و بر اساس دانش و تجربه فعلیتون اگه امکانش رو داشتید حاضر نبودید امروز دوباره اون رو شروع کنید چون در زمانه تغییرات سریع زندگی میکنیم حداقل هفتاد درصد تصمیمهاتون با گذر زمان اشتباه عذاب در میان یعنی هرکس حداقل درگیر یک چیز هست که با دانستن چیزهایی که الان میدونه وارد اون نمیشه استرس داشتن یک نشانه کلیدی موقعیت هایی که نیاز به تفکر از صفر داره هر وقت از یک شخص یا موقعیت احساس استرس، نارضایتی یا ناراحتی دائمی داشتید که به نظر میاد همینطور ادامه داره باید از خودتون بپرسید. با چیزهایی که الان میدونم امروز دوباره وارد این موقعیت میشدم؟ اگه جوابتون منفیه، سؤال سوال بعدی اینه که چطور و با چه سرعتی از این موقعیت بیرون بیام. آیا در فعالیت روزمره، کاری، اجتماعی یا شخصیتون رابطه ای دارید که با چیزهایی که الان میدونی دوباره وارد اون می شدید؟ هیچ بخشی از کارتون، محصولتون، خدماتتون هزینه ها یا فرایندتون هست که با چیزهایی که الان میدونید اگه می خواستید اون را از اول انجام بدید شروعش نمی کردید. هیچ سرمایه گذاری زمانی، پولی یا احساسی که شما رو آزار میده و مانعتون میشه دارید که با دانستن چیزهایی که الان میدونی دوباره واردش نمی شدید. یادتون باشه که هر شرایطی اگه ناراحت کننده باشه احتمالا تغییر نخواهد کرد. احتمالا با گذشت زمان بدتر هم خواهد شد پس تنها سوال اینه که آیا جرعت و اراده کافی دارید که با زندگیتون صادقانه و همونطور که واقعا هست روبرو بشید با بکارگیری تفکر از صفر در تمام بخش‌های زندگیتون شگفت زده خواهید شد که چقدر تصمیمهاتون بهتر میشه و در عین حال چقدر کاراتر میشید